سلام شما قسمت چهارم از فصل سوم پادکست اف رو میشنوید تناب اثر یوجین اونیل هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشدام است برای شما من مهدی خدادادی هستم، سازنده و راوی پادکست علف با کمک دوستانم سعی می‌کنم تو هر قسمت از این پادکست ای رو برای شما روایت کنم. این قسمت بالاخره به یوجین اونیل رسیدیم، نویسنده بسیار مهم و معتبر در تاریخ ادبیات نمایشی. تو این قسمت قرار یک از نمایشنامه‌های تک پرده‌ای یوجین اونیل به نام تناپ رو بشنوید. شنیدن پادکست الف همیشه رایگان بوده و هست. اما برای حمایت مالی از تولید این پادکست میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار گرفته هر مبلغی که خودتون مایل هستید از این پادکست حمایت مالی کنید همچنین برای حمایت از پادکست علف میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید آدرس اینستاگرام پادکست علف توی توضیحات یا دیسکریپشن هست اونجا اخبار مرتبط با پادکست و ان تاریخ انتشار اپیزودهای جدید رو بهتون اطلاع میکنیم و کلاً دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما خالی از لطف نیست. نمایشنامه این قسمت تحت عنوان تار انکبوت و دو نمایشنامه دیگر توسط انتشارات بیت‌گول به چاپ رسیده که هر سن نمایشنامه از جمله تناب رو آقای یدالله عباسی ترجمه کردند. علی رضا باورساد عزیز زحمت نوشتن متن این قسمت رو برای پادکست سالف کشیده و سینا صادی عزیز هم تدوین این اپیزود رو انجام داده. از این دوستان و از شما مخاطبان محترم این پادکست خیلی سپاسگزارم که به رشد و مندگاری این پروژه کمک میکنید. قبل از شنیدن این نمایشنامه بد نیست یوجین اونیل و فضایی که توش نمایشنامه رو نوشته بیشتر بشناسیم تا ارتباط بهتری با این اثر بگیریم یوجین اونیل زندگی را نه به جمع اتاق کاری یک عدیب بلکه به حراس و شگرفی و گاهی به وحشتناکی طوفان و زلزله و آتش سوزی ویران کننده دیده و شناخته این تعریف سینکلر لویز از شخصیت یوجین اونیل یوجین اونیل متولد 16 اکتبر 1888 در نیویورک از همون کودکی به واسطه پدرش با تئاتر آشنا میشه پدرش جیمز اونیل هنرپیشه کوهنکار مکتب رمانتیک در تئاتر آمریکا بود مردی ایرلندی و کاتولیک که با اجرای نمایش زندگیش رو می‌گذرون یعنی شغل اصلیش هم همین اجرای نمایش بود شغل و دین این آقا روی پسرش تاثیر به سزایی داشت. یوجین تحصیل رو از مدارس کاتولیک آغاز کرد طبعا و دبیرستان رو در همین مدارس به پایان رسوند. مدارسی با مقرراتی سختگیرانه و خشک. که شخصیت یوجین رو به آرامی شکل می داد بعد از فارغو تحصیلی در سال 1906 به دانشگاه پرینستون رفت اما بعد از گذر چند ماه به اتحام پرتاب یک بطری آبجو به دفتر ریاست دانشگاه از اون دانشگاه اخراج شد بعد از ماجرای اخراج پدرش یوجین رو توی بنگاه تجاری فروش جواهرات که خودش همیک از دارنش بود استخدام کرد اولین ازدواجی یوجین در سال 1909 با کاتلین جنکینز صورت گرفته که حاصل ازدواجشون هم یوجین جونیور در سال 1910 بود یوجین در مدتی که شغل ثابتی داشت برای خودش زندگی آرامی رو تیمی کرد اما بعد از تولد دو سالگی فرزندش در سال 1912 خانواده رو ترک میکنه تا به دنبال طلا و جواهر به هندوراس بره و اینطوری میشه که از اولین همسرش جدا میشه اونجا بیماری مجال کار بهش نمیده و به ناچار دوباره به خونه پدری برمیگردد. سرانجام بعد از اینکه حالش خوب میشه، بهبود پیدا میکنه، به لطف پدرش به سمت معاونت در گروه هنری اون در میاد. اما مقررات و آنرنحی خانواده باعث میشه که یوجین بار دیگه خانواده رو ترک کنه. اون این بار به بوئنوس آیرس در آرژانتین میره. اونجا کارهای مختلفی میکنه و به نوبت توی شرکت های وستینگ هاست، سویفت و سینگلر به عنوان کارگر مشغول کار میشه که اونجا هم خیلی دوون نمیاره البته و از کارش استعفا میده یوژین روزها رو در کنار دریا پرسه میزد و با جاشوها و بیخانمانها طرح دوستی میریخت و ساعت‌ها به سرگذشت تلخشون گوش میداد خودش در تعریف این دوران کوتاه از زندگیش میگه عرق میخوردم، پوکر بازی می‌کردم. و اینطوری شد که پولام ته کشید. جین که دیگه پولی براش باقی نمونده بود، به عنوان یه جاشوی ساده توی کشتی انگلیسی مشغول به کار شد تا بتونه به نیویورک بره. وقتی پا به نیویورک گذاشت، با پولی که از کار توی کشتی به دست آورده بود، توی دکه ی عرق فروشی جیمی کشیش تونست یه اتاق کرایه کنه. یه اتاق بدبو و پر سر و صدا به همراه یه هم‌اتاقی آسمون‌جول نصیبش شد. یوجین مدتی هم توی بار جیمی کشیش موند و برای خرج و مخارج زندگیش کار مختلفی انجام داد. روزها همینطوری عادی سپری شد تا زمانی که هم‌اتاقی یوجین همون آدم آسمون جل پر سر و صدا از پنجره بیرون پرید و خودکشی کرد. بعد از این اتفاق یوجین تصمیم به ترک آمریکا گرفت. پس ارففروشی رو ترک کرد و با کشتی به ساوت ساوثامپتون رفت. چند هفته اونجا گشت و بعد انگلستان رو به مقصد فیلادلفیا ترک کرد. توی همین سفر و رفت و برگشتاش بین انگلیس و آمریکا پول کلانی توی قمار برنده شد اما به جای استفاده درست از این موقعیت پنی پنی از پولا رو برای هیچ و پوچ خرچ کرد تا اینکه کفگیرش به ته دیک خورد اوزاش وخیم شده بود حالا باید چی کار میکرد؟ تنها کار موثر ولی آزاردهندهی که میتونست انجام بده برگشتن به خونه پدرش بود پس به دیدار اون رفت و دست نیاز پیشش دراز کرد. اما پدرش از دادن پول بی زبون به یوجین امتنا می کنه. اما بهش پیشنهاد میده به عنوان بازیگر در گروه هنریش بازی کنه. یوجین هم پیشنهاد رو میپذیره. اگه دقت کنید هر دفعه این می رفت و شکست می خورد و پیش پدرش برمیگاش پدرش هواشو داشت. یه کاری براش انجام میداد. حالا به نظر یوجین داستان نمایشنامه‌ای که پدرش اونها رو روی صحنه می‌برد دور از ذهن و مبالغه آمیز بود و همین موضوع بازی یوجین در نمایش‌ها تاثیر می‌ذاشت. گفته میشه در یک از سفرهای گروه جیمز از بازی یوجین ایراد می‌گیره و میگه جناب من از بازی شما اصلا راضی نیستم. یوجین هم جواب میده: قربان منم از نمایشنامین شما دلخوشی ندارم. از همینجا جا انتظار می رفت که یوجین با پدرش به مشکل بخوره و دوباره خانواده رو ترک کنه. این اتفاق هم رخ داد. پس یوجین به نیولندن رفت و در روزنامه نیولندن تلگراف به عنوان خبرنگار مشغول به کار شد و به مدت 6 ماه یک ستون روزنامه رو در اختیار گرفت. در این زمان ناگهان یوجین سلامتیش رو از دست میده و در معاینات معلوم میشه که به یک سل خفیف گرفتار شده. پس به توصیه پزشک برای استراحت به آسایشگاهی در والینگفورد مراجعه میکنه. یوجین از زمان طلاق تا بستری شدن در آسایشگاه در مدت زمان یک سال تجربه ای به اندازه یک عمر به دست آورد. بیشتر اتفاقاتی که الان تا الان برای شما تعریف کردم توی همین یک سال افتاده دیگه و سرانجام این شد که در اتاقی کوچک از آسایشگاه تصمیم گرفت شیوه زندگیش رو تغییر بده. یوجین تا الان پسر ولگرد و ولخرج بود. اما با ورودش با آسایشگاه به مدت پنج ماه خودش رو کاوش کرد تا در زمان خروج از اونجا به مردی با هدف و با تجربه تبدیل بشه. اونیل بعد از مرخص شدن به خونه دوستای انگلیسیش رفت و به مدت یک سال اونجا زندگی کرد. تو این مدت شروع به خوندن نمایشنامه و مطالعه در زمینه نمایش کرد. خودش در این باره میگه هرچی به دستم میرسید از یونانی و کلاسیک گرفته تا دوره ملکه الیزابت و آثار مدرن رو مطالعه میکردم. توی همین بازه زمانی شروع به نوشتن میکنه و سرانجام اولین کتابش رو با کمک مادی پدرش به نام تشنگی و چند نمایش نامه نمای دیگر منتشر میکنه. باز اینجا پدرش به دادش میرسه. اما کتاب فروش و استقبال خوبی نداشت و همین اونیل رو نامید میکرد. به پیشنهاد یکی از دوست داشت به دانشگاه کمبریج رفت و در کلاس های پرفسور جورج پیرس بیکر نام نویسی کرد. این آدم خیلی توی ادامه مسیر زندگی اونیل تاثیر گذار بوده. اونیل از وجود پروفسور بیکر به طور شایانی بهره بود. خودش در این باره گفته اناند هایی که درباره نکات نمایشنامه نویسی و همچنین تجزی و تحلیل هنر نمایشنامه نویسی از اون یاد گرفتم دارای ارزش غیرقابل تصورم. در کنار یادگیری هنر نمیشنام نویسی، دلگرمی ها و تشفیخ پروفسور باعث شد اونیل به آینده امیدوار بشه. سالها بعد در این باره گفته حیاتی ترین چیز برای ما که به مسابه هنرمندان احتمالی آینده بودیم ایمان داشتن به کارمون و دنبال کردنش بود. اونیل سال 1916 از هاروارد فارغ تحصیل شد در همون سال به ماساچوست رفت و با اعضای گروهی که به دنبال نمایشنامه‌ای زنده و حیاتی تر از چیزی که در تئاترای بازاری وجود داشت می‌گشتند، همکاری کرد. از بین نمایشنامه‌ای که اونیل همراه خودش به اونجا برد، دو نمایشنامه در راه کاردیف و تشنگی برای اجرا انتخاب شدند. در راه کاردیف به عنوان اولین نمایشنامه اونیل در تئاتر بارانداز که یک کلبه ماهیگیری بود، با نوود تماشا به روی صحنه رفت. بعد از اون هم نمایشنا تشنگی تشنگی رو به روی صحنه برد. اونیل در سال 1916 همراه با اون گروه به نیویورک رفت. اونجا اونیل تونست نمایشنااع های خودش رو به بهترین شکل روی صحنه بیاره که اغلب اونا حاصل خاطرات، یوجین بودند و در بین تلخ‌ترین هاش قرار دارند. از جمله این ها میشه به اختار و مه نوشته شده در 1914 و همچنین نمایشنامه آنجا که علامت گذاری شده و تناب نوشته شده در 1918 اشاره کرد. نمایشنامه تناب با اجرای همین گروه محبوبیت خوبی بین مردم پیدا کرد. این نمایشنامه تک‌پرده‌ای که جزو اولین کارهای اونیل به حساب میاد، چکیده است بر تأثیر پدرش مدارس کاتولیک انجیل یوغا و سفرهاش بر زندگیش همه این تم ها رو به اون معنای مدرن تم توی این نمایشنامه می بینید. کلا بعد از سال 1918 فصل جدیدی در زندگی یوجین اونیل شروع شد که تأثیری بر نوشتن نمایشنامه امروز ما نداشت احتمالا توی قسمت دیگه و با نمایشنامه دیگری از این نمایشنامه نویس بسیار معتبر در جمعهای هنری و اون بخش از زندگی و آثار اونیل هم بپردازیم اما فعلا بریم سراغ نمایشنامه تناب اثر یوجین اونیل قصه تناب توی طویله قدیمی آبراهام بنسلی میگذره که بالای دماغه بلند ساحل ساخته شده. داخل طویله یه میز نجاری کهنه با دو تا نیمکت اطرافش و همینطور یه سندلی حسیری که به دیوار سمت چپ طویله تکیه داده شده قرار داره. کف طویله مقداری علوفه ریخته شده که به نظر مرتوب میان. طرف راست طویله هم چند تا است که توی اونا چوب انبار کردن در کنار غرفه ها در دولنگ بازی هست که دریا از اون پیداست بیرون در جادهی خاکی وجود داره که در کنار اون پرتگاهی با شیب تند به دریا میرسه وسایل کشاورزی و نجاری تقریبا همه جای طویله دیده میشن مشخصه که این وسایل مدت هاست به کار گرفته نشدن در وسط طویله تناب داری از تیرک سقف آویزون شده که باعث میشه تپيله قدیمی غیر عادی دیده بشه هوا بهاری و ساعت حدود شیش و نیم عصر از پایین پرتگاه صدای برخورد موج ها با صخره هم شنیده میشه داستان تناب با نشون دادن نوه بنسلی پیر شروع میشه نوه بنسلی یعنی ماری به نظر 10 ساله میاد. لاغر موهاش و مصبی بسته و لباسای کهنه پوشیده کنار در نشسته و با عروسکش زمزمه میکنه با شنیدن صدایی از بیرون سرکی میکشه و سراسیمه زیر میز نجاری قائم میشه بعد از چند لحظه ابراهام بنسلی در درگاه ظاهر میشه قبل از ورود به طبیله یکمی مکس میکنه تا چشمای ضعیفش به نور طویله عادت کنند بنتلی سنی بین شست یا هفتاد سال داره قد بلندی داره و شونه هم فرو افتاده است لباس های کهنه با یک کت نخنما پوشیده و چوب دستی کلوفتی هم دستشه سرش بیکلاهه و کله تاسش به خاطر آفتاب سیاه شده همینطور صورت عبوس و چروکیده ای داره به طرف میز نجاری میره و بهش تکیه میده و با سوء زن رو نگاه میکنه ناگهان ماری از زیر میز بیرون میپره و از طویله فرار میکنه بنتلی شکه شده و با عصبانیت چوب دستش رو توی هوا تكون میده و داد میزنه طول سگ تخم جن جاسوسی منو میکنه اونا بهش گفتن این کارو کنه به سمت تناب میره و چند بار با اصا بهش ضربه میزنه و بعد از خودش میپرسه گرش سفته برای مردن سفته خیالش که از بابت تناب راحت میشه روی نیمکت میشینه و شروع به خوندن تصنیفی از انجیل میکنه وسطش یاد ماری میفته بهش فحش میده و دوباره تصنیف رو ادامه میده به محض تموم شدن تصنیف آنی وارد میشه اندام لاغر و تکیدی داره حدوداً چهل، چهل و پنج سالشه رنگش پریده و به نظر خسته است لباس پارهی به تن داره و یه کلاه آفتابی به سر بنتلی متوجه حضور آنی شده اما واکنشی نشون نمیده آنی جایی میسته که اگه بنتلی هوایی کتک زدن داشت از چوب دستش دور باشه وقتی کمی احساس امنیت میکنه میگه پدر، پدر وقتش دوا بخوری پاشو بریم خونه اگه نیایی دواتو تو بخوری از شام خبری نیست دا اصلا میشنوی چی میگم؟ پدر بنتلی توجهی به آنی نداره و ناگهان شروع به خوندن قطعه دیگه از کتاب مقدس میکنه. آنی منتظر میمونه تا خوندن پدرش تموم بشه. بعد میگه: بهتر مواظب سلامتی خودت باشی. اینقدر نیا این بالا. تا چشم منو دور میبینی راتو میکشی و میای اینجا. بنسلی جواب آنی رو با تصنیف میده. بنگر هر که زربالمسلی به کار میگیرد علیه تو میگوید از چنان مادری چنین دختری زاید. <laughs> آنی میگه که آره خوشحالم که به مادرم رفتم نه به تو تو یه حیولایی تمام روز کتاب مقدس و یه ریز بلغور میکنی مامانم رو با همین کارات از پادر آوردی اگه هنوز اعتقادی به تو بداری وقتشه که بری کنار قبرش زانو بزنی و از خدا بخوای به خاطر بلاهایی که تمام عمر سرش آوردی از گناهات بگذره بنتلی باز تکرار میکنه از چنین مادری چنین دختری زایت آنی میده و میگه از کتاب مقدس نقل قول میکنی باشه. یادته هست که هنوز کفن مامان خشک نشده بود، رفتی بندر دنبال خوشگذرونی. غیر از اینه، خوشگذرونید با اون هرزه که همه شهر ازش خبر داشتن بعدش هم که با اون ازدواج کردی، آبروی خود تو منو بردی. من هنوزم میرم سر قبر مامان گل میذارم ولی تو اونو فراموش کردی. پیش خودمون باشه. اگه با پتسوینی ازدواج نکرده بودم منم مثل ماما میفرستادی زیر خاک خدا لعنتت کنه تو سال به سال رنگ کلیسا رو نمیدیدی بعد از اینکه با اون زنی که آشنا شدی برای پوشوندن گندی که زدی رو آوردی به دین و کاتولیک شدی بنتلی میگه او به حساب ظلمهای تو خواهد رسید آنی میپره وسط حرف بنتلی و میگه و اون کارهای عجیب قریبی که 6 سال بعد از رفتن من توی اون خونه کردی مایه ننگ همه شهر بود اون زنت با اون بچهش که ادعا می کرد مال توه میرفت سر وقت این کشاورز و اون کشاورز و حتی جاشوهای کشتی توی بندر. حالش ازت به هم میخورد بعدش هم رفت و تو رو با اون بچه تنها گذاشت. بهش می گفت لک. درسته؟ لوک بچه فقط پنج سالش بود که مادرش مرد. تو موندی و اون لوک. بنسلی میگه لوک لک. آنی از اینکه پاشنه آشیل پدرش رو پیدا کرده خوشحاله و تمام تمرکزش رو میذاره روش. آره لوک از چنان مادری چنین پساری زگات خیلی خوشحال بودی که من برگشتم تا خونه رو برات تمیز کنم کمکت کنم کمکت کنم اون دز کوچولو رو بزرگ کنی لوک با دزدیدن پولات دست موضع تو داد اونم کی؟ وقتی فقط 16 سالش بود و میتونست کمک دستت باشه یادته، یا تو اون روز که داشتی دیوونه می شدی و نفرینش می کردی فقط ایستاد و بهت خندید با اشاره به تناب میگه همون وقتی که بهش گفتی اگه برگرد خونه خودشو دار می زنه منظورمه بنتلی سر حرف خودش اصرار می کنه حالا می بینی حالا می بینی آنی از ادامه دادن حرفاش ناامید می شه و میگه فکر کنم من از تو احمق که بایستادم با یه نعش کل پوک بحث می کنم. ولی خب بازم بهت می اون لوکت دیگه بر نمی گرده اگر هم برگرده از اون آدمایی نیست که خودشو دار بزنه. اون هم مثل مامانشه. اگه فکر کنه پول و ای داری بیشتر احتمالش هست که تو رو دار بزنه. پس بهتر اون تناب کوفتی رو بیاری پایین. البته البتهبعید نیست لوک الان مرده باشه. کسی چه میدونه؟ بنتلی حراسان شد از این حرف ماری و اونو رد میکنه.نی حرفهای خودش رو تیید میکنه و ادامه میده بر هر حال آدمایی مثل اون یو میرسن تحخت. منو ببین اینجا وایسادم دارم با این دیوونه بحث میکنم در حالی که هنوز شام آماده نکردم رو به بنتلی میکنه و خوردن داروهاشو یادآوری میکنه و میگه وقتی دارواتو خوردی میتونی بشینی کتاب دعواتو بخونی ولی دارواتو بخور بنتلی خوشگوش زده برای همین آنی بهش نزدیک میشه و تو صورتش نگاه میکنه بعد میگه میشنوی چی میگم نگران شده که شاید پدرش سکته کرده باشه برای همین میگه امیدوارم دوباره نری اون حالت که هیچکس رو نمیشنسی. میدونی کی داره حرف میزنه؟ پدر. منم آنی دخترت. بابا، بنتلی یه دفعه با عصا به بازوی آنی میزنه و میگه تخم سگ، تو دختر من نیستی. آنی از درد گریش میگیره و میگه اینم پاداشم وقتی که سعی میکنم با آدم مهربون باشم. دیو پیر زشت توی همین لحظات سوینی همسر آنی وارد طویله میشه. قدی کوتاه و هیکلی توپُر داره. موهاش حنایی رنگ و چشمای آبی ریزی داره. مثل گافچرونا لباس پوشیده و به نظر مست و عصبی میاد. بدون توجه به اطرافش میگه هنوز شامد داماده نیست تنبل خانو وقتی متوجه ناراحتی آنی میشه دلیل گریش رو میپرسه آنی هم شرح ما میده و سوینی به همین دلیل جوش میاره و میخواد بنتلی رو بزنه که خود آنی مانع میشه. بنتلی همون جور که راحت نشسته شروع به خوندن میکنه خشم خود را بر کفاری فروریست که هنوز تو را نشناخته و بر خانواده هایی که نام تو را نمی چرا که آنها یعقوب را بلعیده و خوردند و اقامتگاه او را ویران کردند. سوینی صلیبی روی سینش میکشه و رو به بنتلی میگه نفرینم کن تو جونت درات. فکر نکنم خدا به حرفایی های پیرمرد گناهکار گوش بده. بعد از آنی میپرسه چی شده اومده اینجا؟ آنی هم میگه اومده به تنابش سر بزنه. بنسلی حرفای سوینی با آنی رو میشنوه برای همین با اعصاب تناب اشاره میکنه و میگه لوک برمیگرده اون وقت میبینی سوینی به پیرمرتی که میندازه و میگه انگار خدا صدا تو نمیشنوه اون دزد خاک تو سر پنج ساله که رفته دیگه هم نمیاد اگه میخوای همینجا بشین تا علف زیر پاد سبز شه ولی من اون تناب زش رو میکشم پایین وقتی سوینی میره سمت تناب تو بازش کنه. بنتلی از جاش بلند میشه و اصاش رو توی هوا تکوم میده و عربده میکشه. آنی ترسیده و از پت میخواد که بیخیال تناب بشه. اونم وقتی حالا احوال بنتلی رو میبینه تناب رو ویل میکنه. بنتلی وقتی مطمئن میشه چیزی تناب رو تهدید نمیکنه آروم میشه و دوباره میشینه. سوینی آنی رو میکشه کنار تا بنتلی صدای حرف زدنشون رو نشنبه. بعد میگه بچه کجاست؟ صداش بزن بگو بیاد این پیری رو ببره خونه میخوام یه چیزی بهت بگم که نمیخوام بشنوه آنی قبول میکنه و میره دم در طویله ماری رو صدا میکنه بعد از چند لحظه ماری با سرعت میاد داخل طویله بعد جوری نفس نفس میزنه سوینی پدر ماری بازوی ماری رو توی دستش میگیره و فشار میده بچه ترسیده و همینطور نفس نفس میزنه سوینی بدون توجه به حال ماری حرفش رو میزنه و صبر نمیکنه یکی بچه آروم بگیره ماری زبونش بند اومده و سوینی هم از اینکه ماری جوابش رو نمیده ناراحت میشه. صداشو بالاتر میبره و بیشتر بازوش رو فشار میده. بالاخره آنی دخالت میکنه و جلوی رفتار سوینی با دخترش رو میگیره و ازش میخواد که کمی آرومتر درخواستش رو بگه. ماری وقتی آروم میشه، دست پیرمرد رو میگیره و با هم میرن بیرون. پدر و مادر دختر روی نیمکت میشینن. توی صحبت های سوینی و آنی ما میفهمیم که سوینی امروز تو بار با دیک والر وکیلی که نامه بنتلی پیششه حرف زده و فهمیده بنتلی هیچی براشون نزاشته آنی تعجب کرده و از سوینی میخواد میکن بیشتر براش توضیح بده چه اتفاقی افتاده سوینی هم شروع میکنه تو احوال پرسی با بالر فهمیدم یه الکولیه سفت و سخته سرم این زندگیش سر و سامونه درست حسابی نداره. به حساب خودم چند تا پیک براش گرفتم، اونم خدا قسم نه نیاورد. بعد از اینکه حسابی مس شد، رفتم سراصله مطلب. یادش آوردم که قبلا وصیت نامه‌ای پیری رو نوشته و ازش خواستم بگه چی توی وصیت نامه هست. بهم به گفت هیچ فایده ای نداره پت. اون مزرعه رو گذاشته واسه پسره. منم گفتم مزرعه که کلا گروی بانکه، پول، پول چی؟ حرفی از پول توی وصیت نامه هست؟ وکیل ماتش برد و گفت پول؟ کدوم پول؟ منم گفتم به هم گفت دیوونه شده پولی نبود فقط مزرعه اسمش توی وصیت نامه هست بازم ازش پرسیدم اون قسم خورد هیچ پولی تو کار نیست سوینی به صورت آنی نزدیک میشه و با کین توزی بنتلی رو جن پیر خطاب میکنه و میپرسه نظرش چیه آنی اولین چیزی که به ذهنش میرسه رو میگه میگه شاید والر دروغ گفته سوینی میگه نه اونقدر مست بود که نتونه دروغ بگه آنی 20 سکه طلا اشاره میکنه و پول نقدی که پدرش برای بزرگ کردن لوک نگه داشته بود اما هیچ وقت از اون استفاده نکرده سوینی هم حرف آنی رو تایید میکنه و میگه فکر کنم ولی قایمشون کرده. امشب دل وروده اتاقشو در میارم. همیشه همونجا انجیل میخونه. آنی تایید میکنه و میگه حالا والر دیگه چی گفت؟ سوینی جواب میده و میگه که گفت فقط اگه لوک تا هفت سال بعد از رفتنش برنگرده که یعنی میشه تا دو سال دیگه چون لوک 5 سال خوب رفته دیگه دادگاه حکم میده مرده و مزرعه رو میدن به ما خیلی هم به درد میخوره میتونیم خرجش کنیم تا دوباره سرپا بشه آنی میپرسه وصیت نامه اینجور آدم ها رو تو دادگاه باطل نمیکنن منظورشه ادمایی مثل پدرش سوینی در جواب آنی حرف والر رو تکرار میکنه و میگه پیری وقتی وصیت میکرد سلامت کامل عقل داشت تنها امید ما اینه که لک مرده باشه و دیگه بر نگرده. بعدش هم ببینیم پیری تلاها رو اگه هنوز داره کجا پنهون کرده. سوینی از جیب کتش شیشه مشروب رو در میاره و همینطور که داره ازش میخوره میگه آها راستی. از دکتر هم درباره پیری پرسیدم. گفت زیاد طول نمیکشه که عقلشو از دست بده. بعدش دیگه نمیتونه هیچ ادعایی روی هیچ چیزی داشته باشه. اما یه چیز دیگه هم هست، اینکه یادش برای رو کجا قایم کرده. اون وقتی که برای ما بد میشه. توی همین لحظات صدای خنده ماری به همراه صدای یه مرد میاد. پت و آنی متعجب همدیگر رو نگاه میکنن و سوینی میپرسه ماریه ولی کی هم راهشه؟ پیریه که نیست پس کیه؟ آنی و سوینی ششاشون رو به در طویله دوختن تا ببینن چه کسی میاد داخل. ماری با یه مرد کم سن نو سال وارد طویله میشه. آنی حیرت زده میگه لوک. لوک نسبتا خوشقیافه است، قدش بلنده و حیکل درشتی داره. پوستش آفتاب سوخته است که میتونه به خاطر دریا نبردی باشه. یه پیراهن آبی تیره با شلوار وصله دار پوشیده. کفشای ملبانی زشتی پاش کرده و کلاه خاکستری رنگی هم به سر داره. سوینی وقتی مطمئن میشه که این پسر همون لوکه روی سینش صلیب میکشه و میگه پناه بر خدا، خودشه. ماری بالا و پایین میپره و پشت سر هم دایی لوک رو صدا میزنه لوک از اینکه همه رو غافل گیر کرده خیلی خوشحاله. به خودش اشاره میکنه و میگه آره بعد از پنج سال ولگشتن دور دنیا برگشتم خونه چی شده روح دیدین هیچکس جوابی نمیده همه خوشکشون زده لوک به طرف آنی میره و بهش میگه یعنی نمیخای از خوشحالی دیدنه داداش دو میتکون بدی آنی عصبانی میشه و لوک رو از خودش میرونه اما لوک خیال نمیشه و میگه اصلا نوض نشدی فقط صورت داغون تر شده آنی جوابی نمیده و لوک بلاخره کوتاه میاد بعدش میره سمت سوینی و دستش رو دراز میکنه و میگه تو چطوری؟ برادر پت یه جوری که انگار اسمشو بلد نیست سوینی به لوک دست نمیده و میگه انقدر پس تو حقیر نشدم که با تو دست بدم. لوک توی این دوایی لفظی کم نمیاره و لبخندش رو حفظ میکنه و میگه ساکت چو؟ اونقدر هم ساده نیستم که مثل قبل جا خالی بدم. این رو که میگه دستش رو جمع میکنه. بعد سکوت میشه. صدایی که زیر بحثای جمع بود خودی نشون میده و توجه همه رو به خودش جلب میکنه. همه ماری رو نگاه میکنن که داره با یه سکه یک بازی میکنه. آنی خیلی عصبی دخترش رو سوال پیچ میکنه که این سکر رو از کجا آورده و سعی میکنه اونو ازش بگیره. اما ماری سکر رو به آنی نمیده. همین موقع لوک برای دفاع از ماری جلوی خواهرش میسته و میگه هوی ولش کن چی از میکنه؟ فقط یه یه دلاریه. وقتی جلوی خونه دیدمش اینو بهش دادم که بره شیرینی بگیره برای خودشو بخوره. فکر کن صوقاتیه. آنی با تندی میگه من که میدونم یه کلکی تو کارته. رو به ماری میکنه و بهش امر میکنه سکه رو به لوک پس بده. وقتی ماری تردید میکنه، آنی وحشیانه پا به زمین میکوبه و سرش داد میزنه. ماری با بغض سکه رو به لوک میده. لوک با نفرت به خاطرش نگاه میکنه و میگه درست گفتم. عوض نشدی. همون گندی هستی که همیشه بودی. لوک ماری رو آروم میکنه و بهش میگه بیا بریم لب صخره سنگپرونی. دوست داری مسابقه بدیم؟ ماری خوشحال و شاد با اشکایی که هنوز داره از گناهاش می ریزه به سکه اشاره میکنه و میگه میشه اونم بندازیم خیلی خوب سر میخوره لوک لبخند میزنه و حرف ماری رو تایید میکنه و میگه همینه بچه جون همشون به درد همین کار می‌خورن باید بندازیشون دور نه اونجور که خرای چش تنگ بهت میگن زیر خاک قایمشون کنی بیا بگیر بندازش دور مال خودت لوک سکه رو به ماری میده و ماری از طویله خارج میشه و لبه صخره مییسته لوک به طرف سوینی برمیگرده و میگه دارم به دخترت یاد میدم که ناخون خشک نباشه امیدوارم مخالفتی نداشته باشی ماری دایش رو صدا میزنه لوک انگشت اشارش رو به سمت آنی و سوینی میگیره و میگه من دقیقه میرم بیرون و شما دوتا فرصت دارین هر کوفتی میخواین راجع به من بگین اما بعدش برمیگردم تا یک گپ جدی داشته باشیم میدونید که من برای تفریح برنگشتم اینجا اینو توی کله خرتون فرو کنید ماری باز لوک رو صدا میزنه. لوک هم بیرون میره و به در تکی میده. ماری زخ کرده او میگه. حالا پرتش میکنم. لوک به ماری تذکر میده که به لبه صخره زیاد نزدیک نشه چون عم آب خیلی زیاده و اگه بیفته دیگه هیچکس کاری از دستش بر نمیاد. ماری گوش میده و چند قدم عقب میره. شروع میکنه به مردن. یک، دو سه. و سکر رو پرت میکنه. ماری زوق زده بالا و پایی میپره و میگه دیدی چطوری چلپی صدادات؟ لوک لبخندی میزنه و به جایی که ماری ایستاده میره. یه سکه از جیبش در میاره و میگه حالا ببین مال من تا کجا میره. سکر رو پرت میکنه و با ماری افتادنش رو تماشا میکنن. اون طرف سوینی و آنی روی نیمکت میشینن. سوینی آهی میکشه و میگه مثل جن میمونه اسمشو به بری ظاهر میشه نگاهی به لوک میندازه و با عصبانیت ادامه میده دلارها رو پرت میکنه دور اون وقت ما یکیشم نداریم دزده کسافت آنی فکرش رو چیز دیگه ای مشغول کرده و برای همین میگه چنلی چی گفت بر نگشته که تفریح کنه فکر میکنی از وصیت نامه خبر داره سوینی جواب میده از کجا میدونه منم تا حالا نمیدونستم بذارش به عهده من یریز باهوش نفرت تو مخفی کن باید با زبون بازی خرش کنی. منم دوستانه رفتار میکنم. اما اول برو خونه و خیلی آروم به پیریه بگو که لوک برگشته. مراقب باش که سکته نکنه چون بعدش دیگه هیچ شانسی برای گرفتن مزرعه نداری. آنی حرفای سوینی رو تایید میکنه و بلند میشه تا بره خونه. توی درگاه در لوک راهش رو سد میکنه. میپرسه: "میری خونه؟ میگم ما شامینای چی نداریم؟ من خیلی گشته‌مه." آنی به لوک خیره میشه. عصبانیتش رو قورت میده و بعد دوستانه جوابش رو میده. لوک از اینکه فهمید شام هست شاد میشه و میگه خوبه. بعدش میتونم بابا رو ببینم. خوشحال میشه منو ببینه. لوک میره سمت سوینی و آنی از طبیله بیرون میره. تو همین حین ماری جیغ میکشه و به دست لوک میکوبه و باز هم سکه میخواد. لوک ماری رو پس میزنه و میگه بچه دیگه سکه ندارم. اونجا یه عالم سنگ بار از اونا بنداز. ماری باز هم جیغ میزنه و از لوک سکه میخواد. سوینی کفری میشه و سر ماری داد میزنه و میگه. رایت رو ول کن توله سگ برو به مامانت کمک کن تا کتاکت نزدم ماری با گریه از در بیرون میره سونی خیلی دوستانه میخواد با لوک دست بده لوک تعجب کرد سوینی لبخند میزنه و میگه گذشته و گذشته من توی این سالا دیگه هیچ کینه ای از تو نداشتم وقتی از خونه فرار کردی یه بچه بودی نمیشد سرزنشت کرد من میخواستم همون اول که اومدی بهت بگم که چقدر از دیدنت خوشحالم ولی چون خاله‌ت اینجا بود نگفتم میدونی که چه زبونی داره و اینم یادم بود که چه داد و قالی با هم داشین. برای همین هیچی نگفتم. لوک میگه باش هرچی چی بادا باد. آباد. با هم دست میدن و میشینن. سوینی مشروبی تعارف میکنه و بعد از اینکه با هم مینوشن سر صحبت رو با اشاره به مشروب باز میکنه. نمیخواستم آنی ببینه وگرنه زودتر به تعارف میکردم. صحبتشون پیش میره تا اینکه لوک احوال بنتی رو جویا میشه. سویینی سعی میکنه محتاطان جوابشو بده. میگه او مثل همیشه شاید یه خورده پیرتر شده باشه. لوک کمی مکس میکنه و میگه فکر میکردم تا حالا بردنش دیوونه خونه. سوینی بلا فاصله جواب میده نه بابا فقط قیافه دیونه ها رو به خودش میگیره گیره حالش خوبه لوک میخنده و میگه هنوزم نم پس نمیده نه سوینی تایید میکنه و میگه اگه صاحب یه اقیانوس بود یه اشک آبم به ماهیا نمیداد ولی فکر نکنم اصلا پولی براش مونده باشه. میدونی به نظرم اینه که مادرت هرچی پیدی داشتتر رو برده لوک، ابروهاشو بالا میندازه انگار که چیزی میدونه که بقیه ازش خبر نداره سوینی ادامه میده که بنتلی فقط همین مزرعه براش باقی مونده که اونم خود سوینی براش سرپرنگه داشت لوک بازم یه لبخندی میزنه و صبر و تحمل سوینی رو بیش از حد توصیف میکنه و میگه پد باید به فکر خودت هم باشی. میدونی که چی میگم سوینی متوجه منظور لوک نمیشه میپرسه منظورت چیه لوک یه کمی مکس میکنه لبخند از صورتش محف میشه و میگه. هیچی بعدش سرش رو بر میگردون و به تناب خیره میشه. ناگه هم شروع به خندیدن میکنه. وقتی سوینی دلیل خندش رو ازش میپرسه لوک با یه سوال جواب میده. <تصفح> اون تنابو از وقتی رفتم اونجا آویزون کرد داره. سوینی هم تایید میکنه و میگه. آره فکر میکرد تو وقتی برگردی اینجا خودتو دار میزنی. لوک با تجب میگه، اون وقت تو میگه دیوونه نیست. یه نفس عمیق میکشه بعد میگه باید به افتخارش یه پیک بزنم. سوینی شیشه مشروب رو به طرفش صور میده و لوک شیشه رو به سمت تنا بلند میکنه و میگه به سلامتی رفیق قدیمی. سوینی هم یه کمی مینوشه. لوک یاد خاطره فرارش میفته و میگه یادت اون روزی که منو رو به خاطر بردن اون سجوق نفرین کرد اونجا تو درگاه وایساده بود و اساسا تکون میداد. منم بهش میخندیم آخ خب میدونی با اون اخ و توفی که از زنش در اومد خیلی بامزه شده بود مردک عوضی وقتی هم که داشتم میرفتم این یه سگ هار سرم نره کشید یادت باشه وقتی برگردی اینجا یه تناب منتظرتی که خودت تو باهاش دار بزنی لعنتی. داشتن یه همچین پدری نوبر. با یاد آوردن این خاطره عصبانی میشه و رو زمین توف میکنه سوینی شیشه مشروب رو به سمتش سر میده و میگه یه پیک بزن فراموشش کنی این مال خیلی وقت پیشه لوک دوباره به تناب نگاه میکنه و میگه اما اون هنوز اونجاست. یه پیک میخور و ادامه میده. من تلافیش رو سرش در میارم. باش ببین. تا آخرین سنت پولش رو میگیرم. از اینجا به بعد آثار مستی تو رفتار و حرفای لوک نمایان میشه. سوینی احتمال میده که اصلا شاید پولی نداشته باشه. اما لوک سر حرف خودش پافشاری میکنه و یه سیگار برای خودش میپیچه. لوک پوکی به سیگار میزنه و دوباره بحث پولهای بنتلی رو پیش میکشه و تأکید میکنه که بنتلی پولا رو پنهان کرده. تو همین لحظات صدای اعتراض آنی از بیرون تبیل به گوش می رسه. سوینی میگه: "هیس، خودشه." لوک از جا میپره و حالت تدافعی به خودش می‌گیره. لحظه بعد بنتلی و بعد از اون آنی وارد تبیل می‌شن. بنتلی با نفس بند اومده به کنار در تکیه میده و سر لوک رو برانداز میکنه. آنی نفس نفس زنان پیش میاد و رو به سویینی میگه نتونستم جلوشو بگیرم. نیاد بالا. پات اگه شام میخوای باید موواظه بش باشی. من نمیتونم هم شام بپزم هم حواسم به بابا باشه. سویینی در جواب به آنی صرفا به گفتن خفش و برو اکتفا میکنه و آنی هم از طویله بیرون می لوک و بنسلی به هم دیگه خیره شده. به جای استفاده از صدا با چشماشون حرف میزنن. بالاخره لوک سر صحبت رو با بنسلی بازی میکنه. سلام پیرمرد. فکر میکردم منو ببینی از خوشحالی پس بیفتی. بنتلی از سر هیجانی که داره میلرزه و توان حرف زدن رو از دست داده. لوک برای شکستن فضای سنگین طویله رو به پت میگه اون عصای کوفتی رو میبینی دستش چقدر سرم سرمو با اون چوب میشکست. سنگینی فضا هنوز پاورجاست. تا اینکه بنتلی شروع به خوندن تصنیفی از انجیل میکنه. بهترین قبا را بیاورید و بر او بپوشانید بر دستش حلقه بیاندازید و بر پایش کفش بپوشانید سپس گوسالهی پروار بیاورید آن را بکشید تا بخوری مشادی شادی کنید چرا که پسر من مرده و دوباره زنده شده او گم شده و از نو پیدا شده لوک از تصنیف خوندن پدرش خوشش نگمده برای همینم هم میگه بابا یا مثل دوتا آدم با هم دست بده لوک و بنسلی با هم دست میدن هر دو خوشحالن و میخندن و لوک از بنتلی تعریف می کنه و رو به سوینی میگه اصلا یادم میاد آخرین بار که دیدم بخند بنتلی هنوز باور نکرده که پسرش برگشته برای همین میخواد به صورتش دست بزنه اما لوک دستش رو میگیره و میگه خودم هم بابا نترس روح نیستم لوک پدرش رو روی نیمکت میشونونه و بعد شیشه مشروب رو برمی داره تا بهش بده سوینی ترسیده و به لوک هشدار میده که ممکنه با خوردن مشروب سکته کنه لوک اما بی توجه و سوینی شیشه رو توی دهن بنتلی میذاره و انقدر مشروب به میده که بنتلی به صرفه میکنه لوک خندش میگیره و به بنتلی میگه ها راهش رو بام کرد مگه نه منظورش مشروبه که به جای مری رفته توی نایه بنتلی حالا نشونت میدم که از چرایی باید بره پایین بعدش یه پیک میخوره و میگه دیدی چقدر راحت بود سوینی به لوک میگه که باید از زیدنت خوشحال باشه وگر نه مشروب نمیخورد بنتلی سعی میکنه چیزی بگه و توی همین اوزا به تناب اشاره میکنه لوک میخنده و انگار متوجه منظور پدرش نشده بعد یه سندلی بر میداره و زیر تناب میذاره بنتلی با اشتیاق نگاهش میکنه لوک رو سندلی میسته و حلقه رو دور گردنش میندازه. بنسلی سرماز شده و از لوک می‌خواد ادامه بده. اما سوینی ترسیده. از لوک خواهش می‌کنه که بیاد پایین. لوک رو به بنسلی می‌کنه و توی همون وضعیت ازش می‌پرسه: تو واقعا می‌خوای من خودمو دار بزنم؟ بنسلی تایید می‌کنه. لوک یکمی مکس می‌کنه بعد سعی داره که صندلی رو از زیر پاهاش هل بده کنار. بنسلی خیلی هیجان زده است و سوینی خیلی ترسیده. ولی اشتراک با هم دارن. اونا منتظرن که ببینن چه اتفاقی برای لوک میافته. لوک دیگه ادامه نمیده و حلقه تناب رو با احتیاط از گردنش در میاره و به سوینی میگه فکر میکردم داره شوخی میکنه. مردک عوضی. بنسلی ناله میکنه و وحشیانه پا به زمین میکوبه. لوک از رفتار پدرش خیلی عصبانی میشه و توی چشماش ظلم میزنه و میگه تیکه تیکت میکنم، پیر مرد خرفت حقم داره دیگه عملا پدرش اشتیاق داره که جنازه پسرش رو ببینه صندلی حصیری رو به هوای کوبیدن به سر بنتلی بالا میبره. سوینی ترسیده و با نگرانی فریاد میکشه. لوک محضر رضای خدا بی خیال شو الش کن دیونه است لوک یکمی صبر میکنه. بعد صندلی رو به یه سمت دیگه میندازه لوک به سمت بنتلی میره و شونه هاش و وحشیانه تکون میده. سرش داد میزن و لعنتش میکنه. سوینی باز هم سعی میکنه تا لوک رو آروم کنه. لوک بعد از اینکه حسابی پیرمرد رو تکون میده، پرتش میکنه روی زمین و سوینی میخواد که بنتلی رو بفرسته خونه. سوینی هم همین کارو رو انجام میده. لوک خودش رو روی نیمکت می و شیشه مشروب رو از روی میز برمیداره داره و تا جایی که میتونه شراب میخوره. سوینی برمیگرده و روبروی لوک میشینه. یکم صبر میکنه و بعد میگه: "مثل یه خرگوش وحشت زده از سر رفت پایین." لوک پدرش رو لعنت میکنه. سوینی با تعجب میگه: "اولش فکر کردم داری با شوخی میکنی، میترسیدم بلای سرش بیاری." لوک تایید میکنه. آره شوخی می فکر کردم فکرم اونم داره بام شوخی می کنه مشت میکووب روی میز و می میزنه. واقعا به نظر تو بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه سوینی میگه واقعا یه خوک پیر پسته لوک میگه باید میدیدی چطور نگاه می کرد. واقعا میخواست خودم رو دار بزنم. بازم تکرار میکنه بدبختی نیست واقعا بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه سوینی میگه ولش کن دیگه تموم شده لوک سرش رو تکون میده و میگه نه نمیتونم یه اصلا فکر کن بعد از اون همه گشنگی کشیدن و توی این دنیای کسافت تا سرحد مرگ کار کردن روی کشتی ها برگشتم خونه اون وقت پدرم میخواد خودمو دار بزنم. پت به نظرت بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه؟ سوینی به شیشه مشروب اشاره میکنه و میگه یه پیک بخوری کم حالت جا بیاد تا بریم شام لوک باز هم مشروب میخوره. با حالت مسی که داره به سوینی میگه چی بهت بگم ملتفت بشی تموم نشده. راستش تازه میخواد شروع بشه فراموش نمیکنم چه کاری باهام کرده میتونم با شرط ببندم اونم فراموش نمیکنه من چیکار کردم با خشم میگه که تلافیش و سرش در میارم سوی پیر همین امشب به خدمتش میرسم پت تو که پشتش نیستی هستی سوینی به یه سمتی توف میکنه و میگه این چه حرفیه یه روزم نشده که آرزوی مرگشو نکنم. لوک میگه: "پس دو به حسابش میرسیم، من و تو. با هم رفیقی، مگه نه؟ نصفشم میرسه به تو. من همچین آدمیم. آدلانه است مگه نه؟" سوینی میگه: همینطوره. لوک ادامه میده: مثلا کاری به این مزرعه کوفتی ندارم. سهم من از مزرعه مال تو. خیال ندارم یه گاف چرون بشم. کار من نیست. چیزی که من میخوام پول نقد، تلاست که همیشه میشه خرج کرد." ولی گاو رو نمیخوام میخوام به همه نشون بدم زندگی واقعی چیه بعدش هم یه کشتی میگیرم و میرم میدونی من سکه میخوام که بشه پرتش کرد مثل دخترت که دلارای منو پرت میکرد سوینی میخواد لوک رو به موضوع اصلی برگردونه برای همین میگه حالا از کجا میخوای پولا رو پیدا کنی لوک لبخند میزنه و جواب میده نگران نباش نشونت میدم بچه که بودم مادرم و میکرد زاغسیاشو چوب بزنم بارها دیدمش که چه میره اونجا عادت داشت پولاش رو از زن عزیزش قایم کنه راسوی سوی پس فترد دو تا جا هست که پولاشو رو قایم کنه یکی همون جایی که من 100 دلارم برداشتم. سوینی وسط حرفش میگه که پس دیگه اونجا نمیذاره لوک ادامه میده یه جای دیگهم هست که خبر نداره من خبر دارم و جاش رو بلدم باید همه رو بردم ولی بچه بودم میترسیدم بیشتر بردارم اما الان تلافیش رو سرش در میاریم بعد دیگه با هم تقسیم میکن اون وقت تو میتونی مزرعهی خراب رو با سهمت رو بره کنی. منم میرم و دیگه بر نمیگردم. سوینی میگه اگه اونجا هم نباشه چی کار کنیم؟ لوک خودش رو جمع جور میکنه و صاف میشینه. بعد میگه آها، اون وقت من و تو کاری میکنیم تا به حرف بیاد. سوینی با بی میگه فکرشم نکن از اونایی نیست که لب کنه ها. لوک لبخند میزنه و میگه خیلی سادهی. دو تا شگرت بلدم که میشه آدما رو به حرف آورد. لوک یه نگاهی روی میز میکنه بعد قلم اسکنر رو بر داره و حرفش رو از سر میگیره اگه درسته حسابی حرف نزنه اینو میندازیم توی آتیش تا داغ شه بعد کفش و جورابش رو در میاریم و کف پاهاشو گرم میکنیم اون وقت مثل بل وسط حرف میزنه سوینی میگه که با جیودا داشت چیکار کنیم لوک جواب میده کاری نداره که یه کهنه چیزی تو دánhش میچاپونیم سوینی میگه فکر خوبیه فقط یه چیزی نباید خیلی بهش آسیب بزنی ها. لوک اخم میکنه و میگه آسیب زیادی بهش نمیزنی فقط تا جایی که لازمه البته که سوینی نگران پیرمرد نیست نگران اینه که از نظر قانونی اگه این کارو کنن که پیرمرد بمیره اون وقت مزرعه مال لوک میشه و هنوز اعتماد کامل به لوک نداره خب بیا بریم هرچی زودتر دست به کار بشیم زودتر پولدار میشیم سوینی و لوک بلند میشن ولی لوک از شدت مستی تلو تلو میخوره. همین موقع سر و کله ماری پیدا میشه و میگه مامان گفت بیام بهتون بگم شام آماده است. سوینی میگه خوبه تو همینجا باش تا وقتی که صداد کنم. فهمیدی؟ وگرنه پوست تو میکنم. لوک به ماری میگه منم فردا بهت کلی از اون سکه ها میدم. از اونا که وقتی میخورن به آب برق میزنن. اون وقت میتونی کلی از اونا رو پرت کنی و بریزی دور ماری از خوشحالی بالا پایین میپره و از لوک میخواد تا به جای فردا همین الان بهش سکه بده. لوک میگه الان نمیشه بچه. فردا صبح میدم. الان من و بابات باید بریم کار داریم. باید پولا رو بگیریم. سوینی متوجه حال بعد لوک میشه و اون رو ساکت میکنه. و بعد از طویله بیرون میره. حالا ماری توی طویله تنهاست. یه کمی که بیکار میشینه، حوصله‌اش سر میره. برای همین سعی میکنه خودش رو سرگرم کنه دور و برش رو نگاه میکنه و متوجه یه سندلی که افتاده میشه برش میداره و زیر تناب میذاره بعد میره روی صندلی که قدش به تناب برسه دستاش رو دور تناب حلقه میکنه و سندلی رو با پا کنار میزنه تا بتونه راحت تاپ بخوره بعد از چند بار تاب خوردن تناب رها میشه و ماری به همراه کیف خاکستری رنگی به زمین میخوره. ماری از درد به خودش میپیچه بعد از مدتی آروم میشه و به دوروبرش نگاه میکنه. تا ببینه چه اتفاقی افتاده. متوجه کیف میشه و خودش رو به سمت کیف میکشه. وقتی کیف رو باز میکنه از خوشحالی درد زمین خوردنش رو فراموش میکنه و بالا پایین میپره. بعد از اینکه حسابی کیفور میشه محتوای کیف که پنجاه تا سکه بیست دولاریه رو کنار در بروی هم کپه میکنه. سکه ها توی نور غروب حسابی میدرخشند ماری آواز خون چند تا سکه رو بر میداره. میره لبه سخره و با تمام قدرت اونا رو پرت میکنه توی دریایی که کم عمیق نیست. بعد هم خم میشه تا افتادن اونا رو نگاه کنه. ابرها افق سرخ و ارغوانی ماری شاد و میرقصه بارها و بارها پرتاب سکه ها رو تکرار میکنه وقتی آخرین سکه رو میندازه دست میزنه و به تبیله برمیگرده میخواد بازی رو ادامه بده اما دیگه سکه ای باقی نمونده نمایشنامه تناب اثر یوجین اونیل رو شنیدید این نمایشنامه نماینده کارهای بعدی اونیله اون تونست با این کار سبک دلخواهش رو پیدا کنه و به چارچوب خودش در نوشتن برسه اونیل نسبت به سوالاتی که در اول متن‌هاش مطرح میکنه احساس وظیفه میکنه و در آخر به اونها پاسخ میده یکی دیگه از ویژگی های اونیل اینه که سعی میکنه مهمترین عواملی که باعث ایجاد اتفاقات میشن رو قبل از رخ دادن برای مخاطب آشکار کنه. این موضوع رو به وضوح تو این نمایشنامه دیدیم اونیل مخاطب رو به خیال خودش رها نمیکنه و همینطور اون رو اسیر دیدگاه خودش هم نمیکنه و یه جایی بین این دو میایسته نوشتههای اونیل معمولا دنیاهایی پر از تلخی و اتفاقات دردناکه اما به اصطلاح سیاهنمایی نمیکنه اونیل با باور به اینکه نباید چشمها رو از روی اتفاقات اطراف بست مینوشته و تناب تمام این ویژگی‌ها رو توی خودش داره. طناب با ایمان و برداشت بنتلی از داستانی مشابه به اتفاقی مهم در زندگی شکل می‌گیره. در انجیل یوغا داستانی هست به اسم پسر ولخرج یا پسر ولگرد که مثل قصه ما یکی از بچه های خونه میره و سرمایه پدر رو به باد میده. اما بعد از مدتی از کار خودش پشیمون میشه و پیش پدر برمیگرده. در بین مسیحیان این داستان معروفه و اون رو اینجور تفسیر میکنن که فرزند نمادی برای انسان و پدر نمادی برای خداوند. این اولگو توی زندگی اونیل همینطور که توی مقدمه هم چند بار گفتم تکرار شده. بنتلی با ایمان و باور به این که پسرش از کار خودش پشیمون میشه یه نقشه میکشه و چند سال از عمرش رو در انتظار میشینه. اون به هیچ چیز جز باوری که داره توجه نمیکنه و باقی عزیزانش رو فراموش میکنه. آیا بنسلی حماقت میکنه؟ اون میتونه سکه ها رو برای ساختن زندگی جدید و بهتر خرج کنه، اما تصمیم گرفت پنهانشون کنه تا نقشش عملی بشه. تناب این جمله رو به چالش میکشه که هر چیزی که بهش فکر میکنی اتفاق میفته. بنسلی، لوک و سوینی هم این جمله رو با خودشون تکرار میکردن، ولی چیزی که میخواستن اتفاق نیفتاد. سوالاتی که بعد از اتمام نمایش ممکن از خودمون بپرسیم اینان. سرنوشت هر کدوم از شخصیتها فردای اون روز چی میشه؟ آیا بنتلی جای پولها رو به لوک و سوینی میگه یا این راز رو با خودش به گور میبره؟ ماری چه بهونهی برای پایین آوردن تناب میاره؟ اگه سوینی حقیقت رو بفهمه چه بلایی سر دخترش میاره؟ و سؤالات دیگهی که وابسته به نگاه مخاطب قصه براش ایجاد میشه؟ آخرین چیزی که درباره این اثر به ذهنم می و می توانم بگم اینه که تناپم مثل چندین اثر شایسته دیگه ای که بعضی چون رو تو همین پادکست براتون روایت کردیم آنچنان شناخته شده نیست و خیلی کم بهش توجه شده در حالی که محتوایی که ارائه میده قابل تأمل و ارزشمند شما هم اگر نظر و نقدی درباره پادکست سلف یا نمایشنامه‌ی این قسمت داشتید برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید میتونیم تونیم حرف بزنیم و با برداشت‌های مختلفی که میشه از این اثر کرد روبرو رو بشیم. از علی رضا باورصاد و سینا سعدی عزیز سپاسگزارم که کمک کردند این قسمت هم به گوش شما برسه. و از شما هم ممنونم که این پادکست رو تا اینجا گوش کردید. الف رو به دوستانتون معرفی کنید و حسابی مراقب خودتون باشید. من مهدی هستم و اینجا قسمت 24 الف هم پایان رسید سالم و آزاد باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنایید کست